شنبه ها اصل میگوید: گیل مرد مه آیا میدانی که آرام آرام از ممکنات و شدنی ها دور میشوی؟ بانوی آذری من شدنی ها و ممکنات فی حد ذاته وجود ندارد. مسائل وجود دارد و این ما هستیم که با اراده و اعتقاد مجموعه ای از مسائل را شدنی و ممکن میکنیم. و این فرق دارد با فرو رفتن در مهی که اصولا ممکن الوجود نیست. عزیز من، رسیدن به هیچ قلعه ممکن و شدنی نیست. این تویی که با تمرین، برنامه، تدارکات و میل و اراده به سوی قله حرکت می کنی تا رسیدن را شدنی کنی. حرفی نیست؟ اما من می ترسم از اینکه به دنبال محال بدویم یعنی تو با انتظامی که به امور می دهی در واقع امر محالی را پیش رو بگذاری هرگز من روی خط مسائلی حرکت کردم که تماما و نهایتا به دست است. یک فرض واقع نشدنی در دکم ندارم تو بگو قطعا این یا آنطور نمی شود و نخواهد شد تا من به مدد سرسختانی تو کاری کنم که عینا بشود بسیار خوب بخوان تا تمام شود حرف بسیار دارم در تمام ماه های گذشته ما یک شنبه را روز اول هفته گرفتیم چند هفته‌ای هم جمعه را حال به نظر میرسد که شنبه تراوت قدیم خود را باز یافته است از این هفته باز شنبه را روز اول هفته بدانیم تو مخالف نیستی؟ نه، اما در این میان یک روز گم می شود و من روزها را چون سکه های در خواب گم کردم نه، فقط یک روز را و به هر حال می خواهی بگوی یک روز خالی به وجود آمده است یک روز بدون برنامه بله، و تو از پس این یک روز بر ای. یادت هست که ما در آن پنج شنبه ها و جمعه ها تماما در سفر بودیم ولی چطور چنین چیزی ممکن است؟ اصلشنبه اساسی ترین روز ماست تمام برنامه های هفتگیمان را مرور می کنیم نقشه من را منابع درامد من را کارهایمان را تقسیم می کنیم به خواسته های بچه ها می رسیم و نیازهای مادر امروز در تالار رودکی نمایشی هست که از آن بد نمیگویند اگر موافقی مادر را به دیدن این نمایش ببریم بعد مادر را میفرستیم خانه و خودمان سری به نمایشگاه آثار تازه قلام حسین نامی میزنیم. روز افتتاح است. در وهمی غریب فرو می رویم. به احتمال زیاد استاد شواهنگی را هم می بینیم. استاد جعفری را، استاد بریرانی را، استاد محجوبی را، استاد شهوغ خودمان را و خیلی های دیگر را. بازار، مهمتر از همه بازار، هوای بدش را چه کنیم. باید برای بازارها تصویع قوی بگذارند. ولی به هر صورت مجبوریم. نگاه کن، کاغذ، قلم نی، مرکب خشک، نخ، پارچه، دستکش، مقوا، پوست، منظور چرم است. بله و خیلی چیزهای دیگر. شنبه روز خوبی هم هست برای دید و بازدید از کسانی که مشکل اداری ندارند و اسیر روزهای تعطیلشان نیستند. من ضمناً سری به چاپخانه سری هم به بنیاد فرهنگان برای بحث درباره تحقیق تازم و این کتاب حجیم سوغات ایران. شاید پولی هم دستمان را بگیرد که ببریم برای بچه ها. امروز ما که نبودیم به مادر تلفن کردند و گفتند اگر اجازه بدهید پس فردا میخواهیم بیاییم برای برای چه کار اصل؟ تو گریه می کنی؟ چه شده اصل؟ یک لحظه صبر کن مرد یک لحظه صبر کن برای خواستگاری دخترمان. تو تو گریه می کنی گیل مرد، باورت نمی شود که زمان بیداد کرده باشد نه؟ حرکت چرا صدایت در نمیآید هیچ حرفی نداری که بزنی؟ اول باید پسرک خودش بیاید ببینمش بعد خانوادش را ریسه کند اینجا پسرک همین گیل مرد کوچک است که هم کلاسیه دختر توست و مدت هاست که می آید و میرود و تو با او گیلکی بلغور می کنی. و او از خط تو، ساز زدن تو و همه اداهای تو تعریف می کند فکر می کنم از قالیشهای تو، صدای دفتو، تو، سفالهای تو و این کتاب آخرت هم کم تعریف نمی کند. باید یک برنامه هفتگی به او بدهی تا متناسب حرکت روزگار تغییراتی در آن بدهد. فکر می‌کنم بهتر باشد یک آشغوانی آرام را به او بدهیم که حرف آخر ماست. عیب ندارد. با جلد خوب بده که برایشان بماند. آدم دعا. بالاخره جوابشان را چه بدهم؟ هستیم یا نیستیم؟ مطابق برنامه هفتگی که نیستیم. ولی خوب. دستکاری مختصری بالای سر دخترم که هنوز خواب است میروم. صورت آرام تو را همیشه در خواب می بینم. مثل خط نستعلیق زیباست عشق اصل گریستن در خلوت. این است آنچه که تو را از پر هم سبکتر می کند گریه هجامت روح است ما دیگران را دیر میشناسیم خودمان را دیرتر صورتت مثل خط نست علیق و بیتی از حافظ زیباست استراب نکند بد عذاب درایت نکند قدر تو را نداند نکند یک روز ارتفاع صدایش از حقارت روحش خبر بدهد گمان مبر که وقتی پنهانكارانه دست او را در دست میگیری من آگاه نیستم بر اینکه چگونه برقی از انگشتان تو میجهد و حرکت میکند و به سراسر تن تا قلب می رود و روح را میلرزاند اما عشق حرف بیشتری دارد. به من نگو که شانه به شانه زیر درختان عقاقی ها با او رفتن و با او حرفی برای زدن نداشتن چرا که کلمات رسا نیستند و در امتداد سکوتی شیرین سکوتی سرشار از آرزوی یافتن بهترین کلام از این سایه به آن سایه کوچیدن چه لذتی دارد من خوب میدانم. اما عشق حرف بیشتری دارد چون این مپندار که من هرگز صدای رعد غریبی را که از برخورد برقاسای دونگاه دو نگاه جوان دو نگاه مغلوب دو نگاه رنگین مؤثر پدید می آید نشنیدم به خدای خدا قسم که من هنوز هم این صدا را به خوبی زمانی که بیست ساله بودم میشنوم، اما عشق حرف بیشتری دارد هرگز به خیشتن و به دیگران مگو که آنها با موهای خاکستری و سفیدشان با چینهایی که بر پیشانی انداختند و با سخنانی که در باب مسائل معمولی و روزمره زندگی میگویند چیزی از آشفتگی درون من خوابهای سرشار از موسیقی من تعم هایم و حرارتی که مرا میسوزاند نمیدانند ما تمام این راه را آهسته آهسته، صبورانه و شیفته، دردمندانه و خم به ابرو آورده رفته ایم و به هر چیز که در دوسوی این مسیر بر آسمان بالای سر من و پیش روی من قرار داشته نگاه کرده ایم اما عشق باز هم حرف بیشتری دارد